اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و, و على رسول الله و آلهی الله در محضر نحج البلاغه هستیم با ذکر سلواتی و احداء اون به محضر متحر امیر علیه السلام بس شروع کنیم اللهم سبحانه محمد و آل محمد در حوالی سال 380 هجری حدود 1670 سال پیش یکی از شاگردان بسیار بزرگوار مرحوم شیخ مفید که سید بزرگواری بوده است به اسم شریف رازی سید رازی رحمت الله علیه البته رازی هم دوباره لقبش هست ولی اسمش اسمشون محمد بوده. این سید بزرگوار اقدام به تعلیف چتابی درباره حضرات معصومین علیهم السلام کرده. روایات جالب و ویژه در مورد حضرات رو به همراه کلمات ویژه از حضرات اینها رو جمع کرده و اسمش رو گذاشته: خصائص اهل بیت. ولی متاسفانه بخش حضرت امیر علیه السلام رو که نوشت دیگه شرایط روزگار به ایشون اجازه نداد این کتاب رو تکمیل کنه و ادامهش رو در مورد سایر بزرگواران بنویسه و کتاب ناقص ماند متاسفانه این مرحوم سید رضی خودش میگه که میگه من یک از دوستانم این کتاب رو دیدند و بسیار خوششون اومد مخصوصا اون قسمتی که روایات حضرت علی علیه السلام رو جدا کرده بودم اون قسمت رو بسیار پسندیدن دیدن که روایات از حضرت امیر خیلی جذاب زیبا و در فنون مختلف آمده و بسیار اونها مورد توجهشون قرار گرفت رضی رحمت الله علی که میدونید دیگه برادر سید مرتضی هست و ایشون جزوه شاگردان خاص شیخ مفید هست و شاید یکی از مهمترین جنبه های این سید بزرگوار که با پنج واسطه به امام کازم علیه السلام میرسه و جالبه مادرش هم جزوه فرزندان حضرت امیرالمومنین المومنین علیه السلام هست با چند واسطه به حضرت امیر میرسه مادرش و همون شخصی هستش که حالا این رو داخل پرانتز ارز کنم که شیخ مفید در مدش این نقل هست که میگه من در خواب دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیه دست امام حسن و امام حسین رو گرفت و بر ما وارد شد و به من فرمود که علم هم الفق حضرت زهرا به من فرمود که به امام حسن و امام حسین فق یاد بده بعد شیخ موفید میگه من از این خواب خیلی تعجب کردم و خیلی براش شدم که این چه خوابی بود من به ماموسی نوی ماموسن فقیق یاد بدم میگه همون ایام حالا نمیان فرداش بوده یا چی بوده ناجهان همین صحنه در واقعیت به این شکل رخ داد که دیدم یک بانوی بسیار جلیلهی وارد شد دست دو فرزند خودش رو گرفت گرفته بود و آورد پیش من گفت که شیخ به اینها فقیق یاد بده یکیشون همین س رزی و اون یکی هم سید مرتضا رحمت الله علیه ما هستش که در محضر شیخ مفید یاد گرفتن، تربیت شدن و همه اینها جزو بزرگان و مفاخر شیعه هستند که ما باید همیشه بر اینها دعا کنیم اینها برگردن ما حق دارن یکی از اون حقها همینی هستش که دارم جریانش رو تعریف میکنم خدمتون میگه این دوستان من از این قسمت کتابی که ناقص موند خیلی خوششون اومد و به من گفتن که سید بزرگوار. شما یه کتابی مخصوص برای کلمات حضرت امیر المامین علیه السلام بینمیست چون همه مثبت ها رو به قول خودمون همه خصائص رو در این کلمات میبینیم هست از هر فنونی هست دین هست معارف توش هست و ادب توش هست ادب به معنی ادبیات عربی فصاحت و بلاغت در این پر هست نکته بارزه مرحوم سید رضی من, من اگر از شما بپرسم که سید رضی چه کاره بود شما خیلی چیزا میتونید بگید که واقعا هم درسته ولی یکی از برجسته‌ترین هاش این بود که مرحوم شریف رضی ادیب واقعی بود شاعر ادیب و استاد در ادبیات فنون مختلف ادبیات عربی کتاباشو ببینید دیگه کتابایی که ایشون در زمینه ادبیات عربی نوشته بسیار قوی هستند و اتفاقا عرب هم بوده خودش که عرض کردم در همین بغداد فراغ بوده و اهل سنت و ادبا این هم همشون نسبت به این شخصیت بزرگوار دیده با احترام علمی دارند سید رضیمه که من این پیشنهاد این دوستان جواب مثبت دادم و خواستم همین کتابی که اونها از من میخوان رو بنویسم من یه تعبیراتی ازشون که در مقدمه هست رو برای شما میخونم ایشون میگه که فنی کنتوفی اونفوان سنده من در اونفوان جوانی در دوران تراوت جوانی بودم که اون کتاب خصائص اهل بیت رو شروع کردم و نوشتم حالا همین خودش یه نکته است ها الان دوستان که اینجا هستن غیر از من آقای حسناتی بزرد کناد که پیر شدیم آقای حسناتی بیشتر پیر شدن چون دیگه ایشون مسئوله مسئول خب معلومه خیلی مسئولیت ها آدم رو پیر بیکنیم ما نه اما مسئولیتی نداریم همینجوری خود به خود پیر شدیم ولی شما که جوان هستید الان باید این رو شروع کنید. شما الان هر کدوم باید آغازگر تعریف یک کتابی که ده سال دیگه نتیجهش رو خواهیم دید باشید. میذارید برای آینده آینده میذارید برای بعدش بعدش دیگه وقت بعد تمام میشه. ایشون قشن دقی میگه میگه در فوان سند جوانی تراوت بودم این کتاب رو شروع کردم که خیلی هم از این کتاب خوششون اومده. بعد میگه که من اتمام بقیه کتاب رو متأسفانه نتا... نتوانستم انجام بدم بعد اون دوستان، است حسن جماعت من الاستغا مشتمل علیه فصل المقدم ذکر و معجبین به بدائعه و متعجبینم من نواصع میگه از اون بخش چلمات از امیر اینها بسیار خوششون اومد معجب بودن یعنی به شیفتی هستن در آمده بودن سالون که ذالکه ان ابتد اب تالیف کتاب یحتوی علی مختار کلام مولانا امیرالمومنین علیه السلام گفتن برگزیده های کلام حضرت رو انتخاب کنم و بنویسم فی جمیع فنونهی و متشعبات غسونهی در هر شاخه برگی که از کلمات حضرت هست اینها رو انتخاب کنم و بنویسم من خطبه، خطبه های حضرت، کتبه، نامه های حضرت، مواعظ و ادب. این ادب گویا منظور همون بحث ادبیات عرب هست المن ان لذلك يتضمن من عجائب البلاغه میدونستیم که این متضمن عجائب بلاغت خواهد بود حضرت امیر فرمایشش شگفتی های بلاغت را خواهد داشت و اتفاقا همین هم هست ها ابن عبدالحدیث را اگر ببینید در بعض جاها خطبه رو نقل میکنه و بعدش بیان میکنه که این خطبه این کلام حضرت چیست؟ یه جا میگن که عرب قدیم ها که به ادبیات بسیار علاقه بود اصلا خوششون میومد مجلس میگرفتن هم شعر میخوندن دیگه های زیبا رو از چهبه آویزان کرده بودن چندی مورد رو یه فرهنگی داشتن ماها یه مقدار اینجوری داریم خیلی نداریم میگه بعضی وقتا در برابر یه کلام بسیار فسی و زیبا پا می شدن همشون به سجده رفتند. در عظمت اون کلام بعد تو همین نجل برائت بعضی جاها هست که میان اینجا همون جایی است که باید عرب به سجده بره اینقدر عظمت این کلام بالا هستش خودش مرحوم رضی میگه اینجا حاذا فصیحٌ جدا انصافا این کلام حضرت دیگه خیلی فسیحه از بقیه هم شاید مثلا میخواد بگه فصاحتش بیشتر هست اینو اینجا داره یادآوری میکنه و جواهر العربیه گوهره های عربیت در اینجا خواهد بود کلمات درخشان دینی و دنیاوی حضرت ما لا و مجتمعن فی چلامه. چیزایی که در یک کلام اینها هیچ وقت جمع شده شو نخواهید دید حالا خلاصه کنم مرحوم رزمی که من دیدم کلمات حضرت امیر علیه السلام مشتمل بر خطبه ها، نامه ها و مواعظ هست که اینها رو جداگانه من جمع کردم و اووردم بعد بر در یه بخشش میگه که از خصایص حضرت این هست که اگر کلمات حضرت رو به شخصی نشون بدی میگه که این هیچ کاری در دنیا غیر از همین ادبیات نداشته یعنی این شخص یک سخنور بوده است بعد اگر بگی که همین سخنور سخنور عرب همونیست که به دریای لشکر دشمن حمله می به تنهایی همون است که وارد در لشکر پسرش ابن هنفیه می گیر می گی که حضرت به من گفت در جمل که برو تو لشکر می خواستم برم بارانی از تیر اومد نتونستم برگشتم دوباره خواستم برم باران تیر بر من حجوم آورد و برگشتم می گفت حضرت یه دفعه خود شمشیرش رو کشید وارد در لشکر جمل شد از این سر لشکر وارد شد از آن طرف لشکر اومد بعد میگه دستش رو شونم گذاشت گفت اینجوری باید بری میگه نفس گرم حضرت هنوز حس می کنم در اون لحظه این شخص همون است حالا بنده اضافه می کنم شب تا صبح پارسای شب ها همین شخص هست همین شخص هستش که در حکومت عادل و تو سر خوندیم زیدان عدلان هستن. مثلا خودش مظهر عدله. اون مثالش باید بگیم علیان عدلان. در حکومت ایشون مظهر عدله. و در همه جوانب که ما نمیتونیم همه اون جوانب رو حتی فهرستش رو در اینجا لیست کنیم. لذا از محروم سید بزرگوار با این کارش دیگه بعد راست در این خطبه ان شاء حتما دوستان خودشون ملاحظه بفرمایید اگر تا حالا ندیدید و نکاتی که ایشون تذکر داده رو در اینجا ببینید بعد در رضی حالا اینو هم ارزم کنم دیگه ارزم تمام یه مقدار که تعریف میکنه از عزاد تعمیر بعد خودش زوق زده میشه و اون شعر جالب رو که جری مرحوم بله میگم مرحوم جناب آقای فرزنده خطاب به در آن حجوی که با هم داشتن چون دیدی دیگه تو ادبیات ما دیدیم فرزدق و جریز با هم یه کریخانی داشتن هررو میکردن همدیگه رو. فر تو یکیش میگه که پلایک آبایی فجعنی به مثل هم. میگه پدران من اینا اگه میتونی آقا جدید شما همچین پدرانی برای ما تو اون جمع هایی که جمع میشیم لیست کن لیست پدرات رو بیا پدرای تو چیم. سید این رو که ازتدم رو که تعریف میکنه بعد همیشه رو میاره میگه. اینها پدران ما هستند یعنی ما افتخار میکنیم که پدران ما شخصیتی مثل حضرت امیراله سلام هست حالا اینو من تذکر عرض کنم که فقط مربوط به سادات نیست چون خود پیغمبر بزرگوار فرمودند انا و علیون ابوا هذه الامه پدر همه این امت حضرت علی و پیغمبر بزرگوار هست ما هم افتخار میکنیم میگیم اولائک ابائی به بمثلهم اونها پدران بزرگوار ما هستند ای دشمنان و مخالفان اگر میتونید شما هم همچین پدرانی رو برای ما لیستشو بیارید ببینیم شما بچه چی هستید ان شاءالله که خداوند متعال توفیق همنشینی بیشتر با این کلمات نورانی رو به ما عنایت کنه ما نهج البلاغه دریایی است خودش مرحوم رضی میگه دریایی است که با دریاهای دیگه قابل مقایسه نیست کلمات نورانی است که اگر واردش بشیم از هر جهت دیگه چمترینش بلاغت هست چمترینش ادبیات هست و انشالله که ما محروم نباشیم هم صحیفه هم نحجل بلاغه و از همه مهمتر قرآن روایات انشالله در محضرشون باشیم و نور اونها وارد قلب ما بشه به برکت سلواتی بر محمد و آل محمد الله صلی اللهم و آل محمد از اساتید و عزیزان من عزقای میکنم کنم. یه سالت بنده رو ببخشید خیلی <تصفيق> بخشید <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>